تو یهجمع در دیوان افسانه های مردم هندوستان نوشته راما چاندرا کی موورتی، ترجمه سارا شمس ارائه شده در کانال تلگرامی هزار افسان، داستان‌های افسانه‌ای صوتی به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی خانش توسط بنفشه این داستان تجارت زبانی روزی نزدیک غروب پیرمردی از یه دهکده عبور می کرد که ناگهان از داخل خونه کوچیکی صدای آوازی شنید پیرمرد ایستاد و به اون آواز گوش داد وقتی آواز تمام شد رفت نزدیک اون خونه و یه نگاهی به داخل خونه انداخت دید که اون خواننده یه دختر کوچیکه پیرمرد با محبت دختر کوچیکو و نوازش کرد و یه سکه طلا بهش داد موهان پدر دختر که همون نزدیکی بود و شاهد گرفتن این هدیه بود بلا فاصل سکه رو از دخترش قاپید و دنبال پیرمرد دوید و فریاد زد سب کن پس بقیهش چی میشه؟ پیرمرد با تعجب به موهان نگاه کرد موهان گفت متوجه هستی که لذت شنیدن آواز دختر من یه سکه طلا نیست بلکه ده سکه است بقیهش هم به هم بده چه زودتر بهتر پیرمرد در همین مدت کوتاه فهمیده بود که با یه آدم رند و حق باز سر و کار داره با این همه به روی خودش نیاورد و گفت متاسفم که به اطلاعت برسونم که در حال حاضر هیچ پولی همراهم هم ندارم حالا شما بگو چه کار کنم موهان جواب داد تو میتونی کلاه و زنجیر طلا و کفشات رو به من بدی؟ پیرمرد جواب داد بله درسته مطمئنم که سر پر از ذکاوت و هوش تو حتما به یه کلاه نیاز داره و گردنی که چنین سری رو محافظت کنه نیازمند یه زنجیری از طلای نابه اما دوست من کفش و کلاه و زنجیر من کهنه شدن و ارزش زیادی ندارن چرا همراه من تا خونم نمیای؟ اونجا میتونم با میل و رغبت یک صد سکه طلای ناب و براق بهت بدم حالا اون سکه رو که بهت دادم و برق خودش رو از دست داده به من برگردون و اگه دوست داری با من همراه بشو موهان با خوشحالی گفت چی صد سکه طلا شما واقعا مرد خوبی هستی تا خونه شما چقدر راهه البته که من آماده برای صد سکه طلا هزار کیلومترم را بیام پیرمرد خندید و گفت لازم نیست تا خونه من حدود 4 پنج کیلومتر بیشتر راه نیست موهان سکه طلایی رو که گرفته بود به پیرمرد پس داد و به دنبالش به راه افتاد تا بره و ست سکه طلا رو به دست بیاره در طول راه موهان خوشحالی خودش رو بروز میداد و به نظر می رسید از شدت خوشحالی داره پردر میاره پرسید شما میدونید من با 100 تا سکه طلا چه کارا که نمیتونم بکنم؟ پیرمرد جواب داد: نه نمیدونم. موهان گفت: خیلی کارا. مثلا میتونم کاخی مثل قصر باشکوه پادشاه شایدم بزرگترش بسازم. بله میتونم و بعدم از پادشاه دخترش رو خواستگاری میکنم. پیرمرد گفت: اما تو که ازدواج کردی و یه دختر خوش صدا هم داری. موهان جواب داد: خب چی دوباره ازدواج میکنم ولی این دفعه حتما دختر پادشاه رو میگیرم خیلی زود اونا وارد شهر شدند و جلوی قصر پادشاه ایستادند پیرمرد یک راست به سمت دروازه قصر رفت موهان پرسید چرا اونجا میری؟ پیرمرد با آرامش پاسخ داد چون اونجا خونه منه موهان با دقت به پیرمرد خیره شد و ناگهان او رو شناخت پیرمرد همون پادشاه بود او اول موفق نشده بود پادشاه رو توی لباس مبدل تشخیص بده ولی حالا کنار پادشاه آرام و ساکت ایستاده بود پادشاه معدبانی گفت خب حالا پدر خوب دختر خاننده تو میتونی بری آواز زیبایی دختر تو برای پنج دقیقه منو شاد کرد و من ازش لذت بردم در عوض منم با قول طلابه تو. یک ساعت تمام تو رو غرق لذت و شادی کردم هنر کلامی دختر تو به من لذت داد منم قول کلامی دادم و بهت شادی و لذت دادم آیا این یه مبادله عادلانه نیست؟ هر چند بعد از اون آواز لذت من با ناامیدی همراه شد چون تو هرس و تمه خودتو نشون دادی و؟ اما با این همه این معامله عادلانه است چون میبینم که لذت بردن تو هم در حال حاضر با ناامیدی دریافت نکردن سکه ها روبرو شده حالا دیگه میتونی بری موهان در حالی که به خاطر از دست دادن همونی سکه هم به شدت ناراحت بود خودشو به شدت لعن و نفرین کرد و به منزلش برگشت امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشید سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی